در واسطه ماه اکتبر حمله نهایی شروع شد یگان ما هم بی نماند مدتی بود که زمین زیر آتش توب خانه به لرزه در بار دیگر آسمان پوشیده از هواپیماهای های متفقین شد و این بار بمب هایشان در خدمت صاف کردن ویرانه ها آمده بود قرش توپ ها و سفیر گلوده ها به اوج رسید گویی آسمان به دونیم میشد. شپنگام نور زننده انفجار همه جا را مثل روز روشن میکرد و زمین به لرزه در می آمد. ارتباط تلفنی بین قرارگاه های فرماندهی به کررات قطع میشد. به طوری که مجبور میشدند از امر برها استفاده کنند. اگر سربازها در دسترس نبودند چه باک؟ دانش آموزان مدرسه هیتلر که بودند در آغاز گروهان برای استفاده از ما تردید به خرج میداد. ولی بعد از مدتی لوتر، لودویک، و هانس به گروهان دیگری در مرکز آخن اعزام شدند. هر سه نفر حین انجام مأموریت مجروح شدند. از خوششانسی لودویک و هانتز را به گروهان ما برگرداندند. اما لوتر به دست امریکایی اسیر ازیر شد. آن روز یک شنبه بود. دستکم صدفان این طور می گفت. هنوز بند سرش را باز نکرده بود. هرچند رنگش کمی تیره تر شده بود. او، سرگرد و ما سه نفر تنها بازماندگان آن قرارگاه بودیم. بقیه افراد مرده بودند. ظرف یک هفته پرسنل گروهان از 98 نفر به بیست و نه نفر کاهش یافت. رقم اخیر شامل خود ما نیز بود. ابتدا تصمیم گرفتند که کشته ها را به قرارگاه منتقل کنند و به خاک بسپارند. اما پس از آنکه سه بار پیاپی، دو نفری که برای حمله جنازه ها رفته بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند، این برنامه متوقف شد. آنها در همان جایی که در خون خود قلتیده بودند به تدریج به شکل حیولایی ترزناک که گویی با طلوم به بادشان کرده بودند، به حال خود رها شده بودند. یک روز عصر داشتم سین خیز از یگان به بر می گشتم. همه جا تاریک بود. می از مسیر پرپیچ و خمی می گذشتم. راهی که عبور از آن در روز امکان نداشت چون دشمن در همان دور و حوالی بود بدون رعایت اقدامات احتیاطی مانند سینه رفتن شروع به دویدن کردم ناگهان پایم لغزید و روی جسم نرمی که صدای مهیبی از آن برخاست افتادم در همان لحظه نور صورتی رنگی دل آسمان را شکافت سرم را بلند کردم تا ببینم روی چه افتادم وقتی شیعی ناشناخته را تکان دادم، صدای دیگری از آن برخاست. نگاهم مستقیما به آن جسدی که روی آن افتاده بودم خیره ماند در حالی که نزدیک بود از ترس، قالب تویی کنم، بدون توجه به هایی که انگار به طرف من هدفگیری شده بود، پا به فرار گذاشتم. در حالی که نفسم بند آمده بود، به قرارگاه رسیدم و به محض ورود فریاد زدم، یک مرده با من حرف زد و زار زار شروع به گریه کردم. سدوان به آرامی برایم توضیح داد که در اثر سقوط ناگهانی من بر روی جسد باد کرده هوا با فشار سینه‌ی او خارج شده و این تصور برای من پیدا شده که مرده به حرف آمده است. در مقایسه با روزهای گذشته یک شنبه نسبتاً آرامی داشتیم. به ندرت و به طور پراکنده گلوله توپی منفجر میشد و هر از گاهی صدای تیراندازی سلاح‌های سبک به گوش میرسید اما در مجموع روز آرامی بود ما تازه می‌خواستیم سبحان مالوک عبارت از دو سیب زمینی خام برای هر نفر بود دستگاه برقی چند روز پیش از کار افتاد شروع کنیم که صدوان وارد شد دو پیام برای گروهان سین دارم که باید ارسال شود من و شارکوف راه افتادیم صدوان موقعیت دقیق محل را که حوالی ایستگاه راه آهن بود روی نقشه برای ما تشریح کرد راه درازی در پیش داشتیم و با مسیر هم آشنا نبودیم. در بعضی قسمت های شهر نقش فایده ای نداشت. غیر ممکن بود بتوان گفت خیابان و ردیف خانه ها در کجا قرار دارند. صحرای از قلوه سنگ با گودال های فراوانی چون دهانه ی فشان جلوی روی ما گسترده بود که بی به سطح کره ماه نبود. ما مجهز به بازوکا بودیم و هر کدام یکی دوتا نارنجک هم داشتیم. که در صورت لزوم می میتوانستیم از آن استفاده کنیم. خیلی طول کشید تا راهمان را پیدا کردیم گهگاه هدف آتش دشمن قرار می گرفتیم. در این جور مواقع خود را روی زمین میانداختیم و منتظر میماندیم پنج دقیقه ده دقیقه یک به ساعت و دوباره می میرفتیم تا گلولهٔ دیگری شلیک میشد صدایی بلند و غیرعادی انگار کسی سیم بسیار حساسی را میکشید و به دنبال آن ابری از خاک به هوا بلند میشد و بر شلیک گلوله گواهی میداد وگرنه ما هرگز چیزی نمیدیدیم چه جنگ مسخره‌ای. سرانجام از خیابان عریزی سر درآوردیم خانه های آن البته به در و پنجره هایشان هنوز سرپا بند بودند در طرف راست خود كلیسای بزرگ نماد شهر آخن را تشخیص دادیم قدری بالاتر بر پشت یه مقابل ما آسمان خراش کوچکی قرار داشت. مقصد ما جایی در این دور و حوالی بود. توفنگ ها و مسلسل ها ناگهان آتش را از سر گرفتند. خوشبختانه اتفاق بدی نیفتند. چسبیده به دیوار خانه ها در حالی که از ترس می سین خیز به جلو می رفتیم. در پاگرد یک مجتمع آپارتمانی که به طرز قمنگیزی ویران شده بود، روی نقشه به مشورت پرداختیم از اولین دوراهی به طرف راست پیچیدیم و به روی خرابهای که در سمت چپ جاده بود راه افتادیم محل مورد نظر را پیدا کردیم و پس از کمی جستجو پناهگاهی را در آن یافتیم بر روی حسار بیرونی آن یک مسلسد جدید مدل چهل و دو مزتقر شده بود مشکل خاصی نداشتیم هیچکس باقی نمانده بود اما امان از این موشهای زهرایی به سرعت برگشتیم در لحظه ورود به خیابان اصلی ناگهان شالکوف مرا به عقب کشید. "صب کن." صدایی گوشم رسید. صدای موتوری را که از دور میآمد شنیدیم. من در قسمت عقب زانو زدم. شالکوف پشت سر من ایستاد و هر دو به پشته مقابل خیره شدیم. صدای موتور نزدیک و نزدیک نزدیک‌تر میشد. شالکوف گفت: "تانک نیست؟" من گفتم: صداش پیشتبه یه سواری یا موتور سیکلت میمونه. صدای موتور قطع شد. ولی ما از جای خود نجام میدیم. در حالی که وزش ناگهانی باد گرد و خاک را به چشم ما میزد. موتور دوباره روشن شد. خود رای خودی بود یا دشمن تردید و ترس بر ما قلبه کرد. به خاطر سکوت اطراف هر صدایی بلندتر از مواقع عادی به گوش می رسید. خود را به آهستگی نزدیکتر شد ما بازوکاهایمان را راماده کردیم خود را به خیابان اصلی پیچید و به آرامی به راه خود ادامه داد یک خودروی چهارگوش مایل به سبز و بدون شیشه جلو بود که سه نفر با قیافه بیگانه و انیفرمهای های رنگ و سبز زیتونی و کلا بیغواره در آن نشسته بودند امریکای ها. دشمن ناگهان نیروی مراوران داشت که هرطور شده از آن محل دور شوم گرچه می دانستم که دیگر برای فرار خیلی دیر است. ماشین وسط جاده ایستاد. سربازی که در کنار راننده نشسته بود، یک خط سفید عمودی روی کلاهش داشت و چیزی شبیه مسلسل سبک در دستش بود. پشت سر آنها سروازی چسبیده به مسلسل سنگینی که روی پای سوار شده بود نشسته بود. و با دقت و حراس دیوارها و بام های خانه های دو طرف جاده را برانداز می آنچه درباره این ماشین از خاطران گذشت این بود که نه در داشت و نه قیافه تنها یک شیء چهارگوش بی بود که یک ستاری سفید روی کاپوت آن نقاشی کرده بودند ماشین دوباره راه افتاد حالا فقط حدود هشتاد متر از ما فاصله داشتند و به زودی به چهار راه می رسیدند دیگر فرصتی نبود تا خود را پنهان کنیم به شالکوف که بر شانه به دقت به طرف ماشینی که به طرف ما می آمد خیره شده بود نگاه کردم. با دقت ماشین را که سر پیچ پشت یک کامیون سوخت پنهان شده بود نشانه گرفتم دستهایم میررسید و عرق سرد تمام بدنم را پوشانده بود. خدایا خودم را به تا سپردم. هرچه چه به چهارراه نزدیک تر میشد آهستهتر می رفت. چرا از وسط جاد حرکت می کرد؟ معلوم نبود. شاید خیلی از خودشان مطمئن بودند. و یا به نظرشان این قسمت کاملا متروک بود. ماشین نزدیک و نزدیکتر شد. مسلسل چی به جای نگاه کردن به بام خانه ها، لوله ی مسلسل را پایین آورد. و هر سه سرنشین ماشین با نگرانی به چهار چشم دوختند. به دقت ماشین را نشانه گرفتم. خیس عرق شده بودم. آنها نگران تله‌های انفجاری بودند و اگر هم در فکر آن نبودند، ظاهراً از جان خود بیمناک بودند. اما برای احتیاط کردن دیگر خیلی دیر شده بود. تقریبا به چهارراه رسیده بودند که ناگهان ماشین تمام گاز زوزه‌ای کشید و با سرعت از چهارراه رد شد. وقتی ماشین درست در تیررس من قرار گرفت، آتش کردم ولی تیرم به خطر رفت در همین لحظه شالکوف آتش کرد. بام ماشین با یک انفجار به هوا رفت. برای اطمینان بیشتر من هم یک نارنجک دستی انداختم. هیچ چیز حرکت نکرد مگر آتش که ترق و تروق میکرد و ابرهایی از دود که ماشین را در خود پوشانده بود. سرنشینان خود را به بیرون پرتاب شده بودند و اجساد آنها در کنار خود خودروی منحدم شده افتاده بود. در حالی که نفر سوم، مسلسلچی، بیجان در میان شعله‌ها آویزان مانده بود. به هیچ وجه قصد ماندن نداشتیم ظرف چند ثانیه بازوکاهای های دودزار و و در طول جاده اصلی پا به فرار گذاشتیم توپخانه ای طرف این دوباره شروع به فعالیت کرد وقتی سرکله هواپیماها هواپیما ها پیدا شد شکف مرا به دالان خانه کشید. بهتر مدتی اینجا بمونیم تا ببینیم چه پیش میاد از جلوی زیرزمین صدای بلند خنده و آواز بریده بریده به گوش می رسید با طنی از پله ها سرازیر شدیم. در انتهای زیرزمین چند سرباز به دور چند شم نشسته بودند کلاهایشان هایشان رغب زده و دکمه های پیراهنشان باز بود و به شیشههای براندی که در دست داشتند خیره شده بودند کاملا مست بودند با دلخوری به ما نگاه کردند تا اینکه یکی از آنها خود را از زمین بلند کرد و با تکبر به طرف ما آمد های ارتش پیشوا <تصفيق> با این کلمات بطریش را به طرف مادراز کرد. یک جرعه برو بالا بچه جون. با اکراه بطری را گرفتم. یک جرعه سر کشیدم و آن را به شال کفت دادم. سرباز با صدای بلند گفت. خب بچه جون. حالا دیگه با هم رفیقین و برای نشان دادن این دوستی ناخواسته با دست پهنش محکم به پشت من کن. چیزی نمانده بود که نفسم بند بیاید سپس مراسم معارفه با صدای بلند انجام شد پس از آنکه قانه شدند که ما قصد نداریم آنها را به دژبانلو بدهیم ما را در جمع خود پذیرفتند معلوم شد که حدود دو روزه است که در این زیر زمین هستند و در تمام مدت دارند اصارت غریبالوقوع خود را به دست آمریکایی‌ها جشن میگیرند تنها امید و این بود که آمریکایی‌ها بیایند و آنها را از آن سرداب بیرون بیاورند در این صورت جنگ برای آنها تمام میشد. سرباز پرسید چیزی دارین دود کنی؟ شارکوف در پاسخ گفت چیزی برای خوردن دارید؟ اگه به ما غذا بدید شاید ما هم چیزی برای دود کردن داشته باشیم تلو تلو به طرف کیسه هاشون رفتند نمایشگاهی باور نکردنی از انواع قضاها گوشت خوک خشک شده کنسرو گوشت سبزیجات، میوه، نان و پودر تخم مرغ ساخت آمریکا و بسیاری چیزهای دیگر ترتیب دادند و همه آنها را جلوی پای ما روی هم آنباشتند. شارکوف پرسید: به جای اینها چند تا سیگار می‌خواید؟ سرباز گفت: هر کدام 6 شارکوف گفت: متأسفم. سرباز مشتاقانه پرسید: شما چند تا می خواهید بدید؟ شارکوف گفت سه تا سربازان ابتدا زیر لب چیزهایی گفتند احتمالا ما را کلاهبردار خواندند خاندند اما سرانجام شرایط شارکوف را پذیرفتند شارکوف در حالی که یک پاکت سیگار اولد گلد را از جیب لباسش در می آورد و آنها را می شمرد گفت به هر کدوم سه تا سیگار می دسه. سه شیش نو دوازده سرباز گفت دو نفر دیگه هم با ما هستم تا چند دقیقه دیگه می رسند بسیار خوب پس همه پاکت مال شما در حالی که با اصطلاحات مخصوص سیگارها را تحسین کرده و آنها را به دقت برانداز می کردند، تشخیص دادند که از نوع ارزان و معمولی ساخت آلمان نیست بلکه از نوع مرغوب است. یکی از آنها پرسید اینا را کجا گیر وردید؟ خیلی ساده رفتیم پیش یانکی ها و یکی از آنها به قدری از ما خوشش اومد که این پاکت رو به ما داد و گفت این هم برای پیشوا اما همونطور که همه شما می دونین پیشوا پیشوانم مشروب میخوره نه سیگار میکشه. به همین خاطر سیگارها رو برای خودمون نگه داشتیم سرباز به نشانه موافقت پوزخندی تحویل ما داد من و شالکوف هم سیگاری دود کردیم بطری را دوباره دور گرداندند. شارکوف چشمک زد. ما فقط تظاهر به نوشیدن و مشروب کردیم. بطری را به نفر بعدی رد کردم. بقل دستی خندان و با نشاتم جرعی براندی نوشید و بعد از سرکه فریاد کشید. جانمی جان! جانمی جان! و دوباره با دستهای پهن و سنگینش به پشتم کوبید طوری که نفسم بندام. یک بار که تازه پوکی به سیگار زده بودم، نزدیک بود خفه شوم. سربازی یکی از آوازهای پرشور میهن را که در کنسرت‌های نظامیان گوبلز طرفداران زیادی داشت خواند. سرباز دیگری که تلو تلو میخورد همراه با یک زن از یکی از راهروها وارد زیرزمین شد. نور شمع فقط قسمت پایین چهره‌ی او را روشن میکرد. صورتش در سایه ناشناخته ماند. بغل دستی من سهم سیگارهایشان را داد سپس برخاست و در حالی که تازه وارد جای او را می‌گرفت خود همراه با آن زن در پیچ و خمهای تاریک زیر زمین ناپدید شد من و شارکوف چند تکه گوشت خوک دودی بریدیم و با چند برش نان بلعیدیم سربازها تا خرخرهش اش نفس خوردند سر و تا حرفهایشان، به موضوعاتی مربوط می شد که وقتی مردها بیش از که دو ساعت دور هم می پیش می کف زمین در جلو و پشت سرشان پوشیده از خلط و آب دهن بود و هنگامی که سرانجام خسته شدند روی آن قلطیدند و به خواب رفتند. اینجا در عمق تاریکی هر کس به نحوی کس به دنبال کسب رضایت خود بود. اما آنچه می چیزی جز شرم و تأصف نبود. در خیابان ها و در خرابه ها مردم ماشه توفنگ ها رو می بر و بران بودند تا هدفی گمنام را منهدم کنند در همه جا بی تفاوتی و انزجار موج میزد. بیشتر بی تفاوتی شاید جایی آن بالا عشق همچنان وجود داشت همگی به خواب رفته بودند آن زن هم برگشته بود صورت خستش در نور لرزان شم چقدر جوان بود سربازها ها خابیده بودند و او همچنان که به دیوار نمناک زیر زمین تکیه کرده بود زانوهایش را بغل گرفته بود با بطری مشروب میخورد کلمه حرف نمیزد و وقتی که بطری خالی شد به آرامیان را روی زمین گذاشت و از توی جیبش یک قطع عکس بیرون آورد به عکس نگاه میکرد و بی صدا به پهنای صورتش عشق میبیند بعد هم به آرامی کنار سرباس ها راز کشید. عکس هنوز دستش بود که ناگهان تکانی خورد و در حالی که می درسید فریاد زد؟ خدایا چرا اون ازم گرفتی؟ چرا گذاشتی این جنگ مسخره پا بگیره؟ فریاد زن پاسخی نداشت. خور و به هوا رفته بود و از سر و صدایی بیرون چونین برمیآمد که خداوند به هیچ وجه تصمیم ندارد بازی را به این سودی ها متوقف کند. هنگامی که پرتاب سرخ فام شفق در آسمان مغرب رنگ باخت، با احتیاط از زیر زمین بیرون آمدیم. آتش توپخانه بی امان ادامه داشت. های آلمانی که های آن با رگه های از نور و قلب آسمان خنجر میزد، به آتش دشمن پاسخ میداد. صحنه نبرد با ترهای ملالنگیزی از های سوخته برابر ما بود. تاریکی شب انبوه جنازه ها را در خود پوشانده بود. به سمت پایین جاده دویدیم. از های خاردار که اینجا و آنجا سردستی و از سر بیمیلی کشیده شده بود، گریز می‌زدیم. به محض آنکه وارد خیابان فرعی کوچکی شدیم که ما را به هایی که صبح امروز از آنجا آمده بودیم می‌رساند، ائدی سرباز را دیدیم که یک قبضه توپ 88 میلیمتری را که لوله آن به طرف بالای جاده نشانه رفته بود، به کار می‌انداختند. بی اختیار خودمان را روی زمین انداختیم. پارههای خمپاره و آچور به سر و روی میبارید. بهزودی متوجه شدیم که منطقه ما زیر آتش دشمن است. 88 میلیمتری آتش گشود. در طرف مقابل نور دیگری فضای نیمه تاریک را روشن کرد توبچی فریاد زد یکی دیگه بزا به حساب ظرف چند ثانیه وحشیگری خانمان برانداز از نو شروع شده بود یکی از توبچیها فریاد زد گورتونو گم کنید احمقای لعنتی دیگری گفت تانک ها دارم میان نیازی نبود که حرفشان را تکرار کنند. جایی ماندن نبود. از روی خرابه ها سینه خیز میرفتیم، بلند می و دوباره خودمان را روی زمین میانداختیم. تا به قرارگاه گروهان رسیدیم. تمام منطقه زیر آتش توپخانه خانه بود. سطفان، ستا سرباز و هم من گنار منتظر ما بودند. علت قطع تماس را گزارش دادیم، اما از قرار معلوم اهمیتی نداشت. سطفان گفت، خدا رو شکه اومدید، ما داریم اقب نشینه می دوباره به راه افتادیم. در پی تعقیبی دیوانوار و بیپایان، هایان، آخن آخین را همراه با صدای انفجار گلوده های توب، نور های خیره کننده و نامنظم سبز رنگ، فواره های از قلب سنگ و دعاهای زیر لب، زیر پا گذاشتیم. و چهار سوار سرنوشت ما را تعقیب می گهگاه از شدت آتش توبخانه درون گودال ها و هفره ها زمین گیر می شدیم. در آن حال به قررش توفنگ ها و سفیر گلوله ها گوش می دادیم. بی هوای آمیخته به گرد و خاک و بوی بارود و اجساد سربازان سینه های ما مشتقان هوا را فرو می برد. با آنکه چشم های من در آن هوای دودالود جایی را نمیدید همچنان سرسختان راه نجاتی می جاست. به جاده عریزی رسیدیم، و با آنکه منطقه نبرد را پشت سر گذاشته بودیم، همه جا پر از خودروهای شبله و مهمات در حال انفجار بود. اجساد سربازان و پیکر آلود مجروحان به شکل فجیعی در کنار هم افتاده بود. تنها معدودی از کادر بهداری در آنجا دیده می شدند. سرعت خود را کم کردیم و به یکدیگر نگاه کردیم. تمام سر و صورت من پوشیده از گل بود. بوی بارانی از گل و لای برما باریده بود. وحشت در نگاهمان موج میزد در آن لحظات، شاید همین وحشت محض بود که ما را به دویدن، نفس کشیدن و زنده ماندن تشویق میکرد. از جایی در تاریکی فریاد میزدند. "ایست! کجا می روید! سلطان قدم درون تاریکی گذاشت و وقتی که برگشت، ستونی از سربازان دنبالش راه افتاده بودند. او گفت: نیروی کمکی برای آخن سپس راه را به مردی که پشت سرش بود نشان داد و سرانجام پرسید توان رزمی شما چقدر سی نفر مرد اگر به توان شانزه ساله ها را مرد نامید در حالی که سربازان به طرف هنگامه بیشفقت نیستی که یک بار آن را رعد و برق پولاد نامیده بودیم میرفتند فریاد زدیم سفر به خیر آنها هم در جواب ما گفتند سفر به خیر یکی دو هفته بعد یعنی درست در بیست 21 اکتبر سال 1944 آخین پس از نبردی وحشیانه به نیروهای آمریکا تسلیم شد